فصل بیستم حس میکردم تمام وجودم را کثافت گرفته و بوی گند دهم مثل لازاروس فکر میکردم باید بروم حمام ولی تمیز بودم و بوی بدی نمیدادم خودم را کشان کشان به آشپزخانه رساندم گاز زیر لوبیا و آب را خاموش کردم دوباره به اتاق نشیمن آمدم و بطری کنیاک را دم دهانم گذاشتم فایده نداشت. حتی زنگ تلفن هم نتوانست مرا از رخوتی که داشتم بیرون بکشد. گوشی را برداشتم گفتم بله. زابین امونز گفت، هانس معلوم هست چه کار میکنی؟ سکوت کردم و او گفت، برای تلگراف ناراحت کننده میفرستی و اینقدر خراب است؟ مبهوت گفتم، آنقدر بد هست که از پا بیفتم، گفت من با بچه رفته بودم گردش کارل هم برای یک هفته با بچه های کلاسش به یک دکده رفته و من مجبور شدم یکی را پیش بچه بگذارم تا بتوانم تلفن کنم از صدایش معلوم بود عجله دارد و مثل همیشه کمی هم عصبی است نتوانستم خودم را راضی کنم از او پول بخواهم کارل از وقتی ازدواج کرده سخت درگیر حساب و کتاب و تأمین مخارج خانواده شده وقتی با او دعوامون شد سه بچه داشت و چهار رومی در راه بود ولی من جرعت نداشتم از زابینه بپرسم آیا در این فاصله بچه را به دنیا آورده یا نه در خانه آنها همیشه به خاطر مسائل مالی جر و بحث بود و یاد داشت های لعنتی کارل که رویشان حساب دخل و خرج را نوشته بود همه جا دیده وقتی با او تنها بودم به شکل منزجر کنندهی رکگو می و شروع به مردانه صحبت شدن می‌کرد. همیشه از کلیسای کاتولیک ایراد می گرفت، آن هم برای من و همیشه بحث به جایی می رسید که به من به چشم سگی زوز کش نگاه میکرد. اغلب در همین لحظه زابینه وارد می شد و نگاه غضبناکی به او میانداخت چون باز هم آبستن بود. <تصفيق> به نظر من چیزی ناراحت کننده تر از این وجود ندارد که زنی برای اینکه آبستن شده از دست شوهرش خشمگین باشد. عاقبت هم هر دو زانوی غم بغل میگرفتند و زار میزدند چون واقعا هم دیگر را دوست داشتند در پشت این صحنه سر و صدای بچه ها غوغا می میکرد آنها لیین مخصوص ادرار را با لذت سر و می کردندند و دستمالهای های خیص را به کاغذ دیواری نو میزدند در حالی که کارل همیشه دم از انزبات و فرمانبری مطلق میزد و من چاارهای جز اینکه به اتاق بچه ها بروم و برایشان کمی مسخرگی کنم تا آرام بگیرند. ولی فایده نداشت. آنها از فرط لذت جیغ میکشیدند و میخواستند خواستند حرکاتم را تقلید کنند سرانجام مجبور می برای ساکت کردنشان هر کدام بچه ای را روی زانوی خود بنشانیم و بگذاریم لوی به گیلاس شرحاب بزنند آن وقت کارل و زابینه از کتاب ها و تقویم هایی صحبت می که در آنها توضیح داده بود که یک زن در چه مواقعی نمیتواند بچه دار شود؟ با این وجود آنها دائما بچه دار می شدند و متوجه نبودند که این داستان باعث آزار من و به خصوص ماری می شود. آنها میدانستند که ما بچه دار نمی شویم. وقتی هم که کارل مست می شد شروع می کرد به نفرین رم و لعن کاردینال ها و پاپ و دم بدم آرزوهایش از پاپ بیشتر و بیشتر می شد. اینکه که من از پاپ دفاع می کردم، ماری که دانشش از من بیشتر بود برای کارل و زابین توضیح میداد که از دست پاپ و کاردینال های روم کاری برای جلوگیری از بچه دار شدن آنها بر نمیآید. بعد هر دو بد جنس شده به من نگاه میکردند. گویی میخواستند بگویند: «آخ شماها، شماها باید حقیقی بلد باشید که بچه دار نمیشید و آخر سر یکی از بچه ها که خسته شده بود. گیلاس شراب ماری، من، کارل یا زاوینه را چنگ میزد و روی دفترچه های مشق بچه های مدرسه می ریخت کارل همیشه آنها را دست دست روی میز می گذاشت طبیعتا این موضوع برای کارل نراحت کننده بود چون او دائما برای شاگردانش درباره نظم و انضباط موزه می کرد و حالا مجبور بود دفترچه بچه ها را با لک شراب با آنها برگرداند حالا نوبت کتک زدن بچه ها و بلند شدن صدای گریه و فریاد آنها بود و زابینه در حالی که نگاهی هاکی از امان از دست شما مردها به ما میانداخت با ماری به آشپسخانه می رفت که قهوه درست کند و بدون شک آنجا صحبت های زنانه ای می کردند که ماری همانقدر از آن نراحت می شود که من از صحبت های مردانه وقتی من با کار تنها میماندم، باز شروع میکرد از پول حرف زدن. آن هم با چنان لحن سرزنشواری که انگار میخواست بگوید: من با تو در این باره صحبت میکنم چون تو پسر خوبی هستی ولی شک ندارم که یک کلمه از حرف های مرا نمیفهمی. آهی کشیدم و گفتم: "آه، زابینه، من از هر جهت بیمار شدم. از نظر شغلی، روحی، بدنی، مالی. من" گفت اگر واقعا گرست هستی امیدوارم بدانی که همیشه یک دیگ پر از سوپ روی اجاق برایت هست سکوت کردم دلم سوخت لحنش صمیمی و بیریا بود گفت گوش میدهی؟ گفتم گوش میدم و حد اکثر تا فردا خواهم آمد و دیگ سوپم را خواهم خورد و اگر شماها وقتی به کسی احتیاج داشته باشید که موازه به بچه ها باشد من من توانستم جمله را تمام کنم از یک طرف نمیتوانستم کاری را که همیشه مجانی برایشان کرده بودم حالا برایش دست بگیرم و از طرف دیگر یاد داستان احمقانه تخم مرغی که به گرگور داده بودم افتادم زابینه خندید و گفت چرا حرف نمیزنی گفتم منظورم این است که اگر بتوانید مرا به دوستانتان توصیه کنید هم تلفن دارم و هم ارزان حساب میکنم سکوت کرد به خوبی احساس کردم که از پیشنهادم جا خورده گفت ببین من نمی توانم زیاد صحبت کنم ولی به من بگو چه خبر شده به نظرم درون او تنها کسی بود که انتقاد کاسترت را نخونده بود و یادم آمد که او نمیتواند تواند بداند بین من و ماری چه گذشته او هیچ کدام از اعضای گروه را نمی شناخت گفتم زابینه ماری ترکم کرد تا با شخصی به نام تصفنر عروسی کند فریاد زد خدای من باور نمی کنم گفتم ولی حقیقت دارد سکوت کرد شنیدم که مشتی به در باجه تلفن خورد شک نداشتم که یکی از این دیوانه ها بود که میخواست تلفنی به هم بازی اسکاتش اطلاع بدهد که چطور می تک دل را بدون سلو ببرد سابینه گفت تو باید با او عروسی میکردی کردی منظورم این است اخ خودت میدونی چه میگویم گفتم میدانم. میخواستم ولی بعد معلوم شد که یک ورقه لعنتی از ثبت احوال لازم است و اینکه من باید تعهد بدهم میفهمی باید تعهد بدم که بچه ها رو کاتولیکی بار بیاورم پرسید فقط به خاطر ضرباتی که به درباجه میخورد شدیدتر شد گفتم بهانه که این بود ولی حتم دارم چیزهای دیگری هم بود که من از درکش عاجزم حالا دیگر گوشی رو بگذار زبینه وگرنه این آلمانی دیوانه هم تو را میکشد این مملکت پر از جان است باید قول بدهی که پیش ما بیایی و یادت باشد که سوپ روی اجاق منتظر توست. دیدم که صدایش ضعیف شد. حالا دیگر نجوا می کرد ناجوان مردان است، رضضات است، پسی است؟ ولی چنین به نظر میآمد که از حاس گوشی را به جای تلفن روی میزی گذاشته است که دفتر تلفن را روی آن میگذارند. صدای مردک را شنیدم که می گفت بالاخره تمام شد. به نظر می که زابینه از آنجا رفته است فریاد زدم کمک کمک با صدایی چنان زیر و بلند که مردک گول خورد گوشی را برداشت و گفت چه کمکی می توانم به شما بکنم صدایش تنین جدی و محکم مردانهی داشت و می توانستم بو بکشم که چیز ترشی خورده است شاخ ماهی نمک سود یا چیزی شبیه آن. گفت الو الو گفتم شما آلمانی هستید؟ من اصولا فقط به آلمانی ها حرف می زنم. گفت اصل بسیار خوب است مشکلتان چیست گفتم نگران حزب دموکرات مسیحی هستم شما به حزب دموکرات مسیحی رأی را دهید؟ دلخور و این شده جواب داد این اینکه بدیهیاست گفتم خب خیالم راحت شد و گوشی را گذاشتم